یا الله يا و يوم يوم مظهر يا قاهر الله يا قاهر العدو وي وي وي يا قاهر آمدم دنیا برای دیدن روی یا علی آمدم داد یا چه کاری داشتم علی ولی یا الله علی ولی نام مقدادت توی... کوچای فنی هاشم جانم جانم بین علی ولی الله ان یه روز مولا جان حسین علی ولی الله گفتنتون بگیره نفسم ثابت شه جانم ثوای علی ولی الله علی ولی الله مقدادت کوچای بادی هاشم نام ام ایران مونیونو گرفتند زدنش وشتمش وسان با غلاف شنوم زدند با همین حال خنالود مد دم خونی از از زهرا دق الباب کرد آقا امام مرتضا هم پشت در گفتن من مقدادم چند تا سن شده آقا امام مرتضا رفتن واسه از از زهرا عرض کردم همچین مازرای رخ داده بی بی پرس نانیو دادن دست امام مشتبان ایسالات و اسلالا که برو اینو بده دست مقدار گفت یا حسن اینو دادی دست مقدار بگو اینو با دست خودم آرد کردم با دست خودم پختم مقدار ولی بدون نام, نام علی و علی دیگر من, دیگر من فاطمه رو خوشحال کرد اینه که اگه یه وقتی داشتی یه وقتی گرهی به کارت یه چند تا نام امیر المومنین هدیه کن به از زهرا انقدر خوشحال میشن بیبی اگه بیبی شهیده شدن یک کلوم به خاطر ولایت آقا امیر المومنین به خاطر اینکه مولا 25 سال خونه نشینش <laughs> ya yeah, el yeah, and... آسد محمودین یعنی اینکه که هر کس اسم امیر رو ببره. ببره. ببره سختی داره, داره. داره. داره. کتک خوردن داره اما نون, اما سر, نون سفرش سر سفرش و عزت زهرام, زهرام, زهرام, زهرام, زهرام خود خانوم خود تزمین, خود تزمین, تزمین, تزمین, تزمین قربونت, قربونت برم, برم خانومت ali ali, ali. خدا, رحمت خدا رحمت بریم یه جای بریم دیگه این قبر, قبر امام, امام, امام هشتم ام سلطان ام دین رضا از جان به بر در این Bargah <Sýst> Bargah. <Sýst> کاشافه کردم فاطمه بود کافون کافش کاشاف کردم فاطمه بود نون آن حرف نخواست از ام بود نون آن حرف نخست از عم فاطمه بود کا کافش کاف کرم فاتم بود کن فیا این خوبین کافونو نشیه کافونو کافش کاف کرام فاتم بود نون آن حرف نخست از نام فاتم نون آن حرف نخست از نام فاتم نفهی روح بر آدم ز دم فاتمه بود روح بر آدم زدم بود. بود گل آدم ز تراب قدم فاتمه بود گل آدم ز تراب قدم فاتمه بود ورنه آدم شدنش تا به ابد بود مهار ورن آدم شدنش تا به ابد بود, بود, بود حال یا زهرا یا زهرا All uh right. -huh. دمز ز ثرا به قدم فاطمه ورنه آدم شدنش تا به ابد بود مهان ورنه آدم شدنش تا به ابد بود مهان پدرش بارگر پرده فردی اوم ش بطشکن و دشمن اصنا بوون شوهرش بطشکن و دشمن اصنا بوون پسرش دشمن هر ظالم خود کام پسرش دشمن هر ظالم خود کام دخترش فاطه گراتکده ی شام بود, بود،, بود، دخترش فاطمه گراتکده ی اون بواد فاطمه خانه اش مرکز علم و ادب و آزادی خانه اش مرکز علم و ادب و آزادی وتمبره ہم عالم سمتش استادی بر همه عالم سمتش اسطیا ی زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا زهرا ای همه اسمت تقوای ز پاتام بسرم ای همه اسمت تقوای ز پاتام بسرم سرمه ی چشم ملائک همه از خاک درم سرمه چشم ملائک همه از خاک درم اولین شخص جهان بشریت احمد گفت دو صد بار به قربان تو جان پدرم گفت دوصد بار به گبان تو جان, جان پدرد دخداران در همه جا دست پدر بوسن دخداران در همه جا دست پدر می بوسن تو که هستی که زنند بوسه به دست دست پدرد تو کسی که زند بوسه به دست دست بسزارت گرچه بر خلق دو عالم همگی مفتخری گرچه بر خلق دو عالم همگی مفتخری گرچه بر خلق دو آلم همگی مفتخری فخرت بس که بود همچه حسینی پسرت فخرت این بس که بود همچه پسرت عجل ولی کلفرد یا الله جل وليك العلی کل الله، اجلل و العلی کل فرдж یا الله، اجلل و العلی کل فرдж جان جان جان، اجلل و العلی کل فرдж، اجلل الله اجلل اجل ولی کالفرد آجرک الله بقیت الله فی ماتم الاشورا آجرک الله الله فی ما تمن هر روز و شب خوندگی میکنم برای یادت یا آجر کلّ. فی ما تمن آشور فی ما تملاشورا الله فی ما تا بزم از آیتو این تو، به خدا خود بشه، به خدا خود بهشده به خدا خود بهشده گمبتلای تو سهن و سرای تو به خدا خود بهشده به خدا خود بهشده به خدا خود بهشده به به به به به به به به آقا از هم بگی سوید به تاقه که دلت تو بر نگیر که که تو بر شب تاج میاد با حسین حسین با Four ای حسین منی، هسینش منی. نمیفای بیفای بیفای بیفای بیفای بیفای بیفای بیفای بیفای بی صدا یا <لا> عبا آقا جان بی بالم و شهپر ولا می خواهم <لا> <لا> پرواز <لا> به گنبد طلا می خواهم گفتی <لا> <لا> <لا> <لا> که بیا هر آنچه خواهی بدهم من آمدم کرب آمد آمد. و بلا من خواهد. عمرے غم روزها اجین شده با کل وجودم عمرے غم روزها اجین شده با کل وجودم از کوچیکی ما شق سیاهی سینے زنی بودا از کوچیکی ما شق سیاهی سینے زنی بوده. تا میاد اسم توی روزه ها میپره دل بی هوا به هرمی با صفا میرسه هر دم به ندا یه ندای آشنا هی علا کرولا یا حسین یا سیدی یا حسین یا سیدی یا, حسید یا, حسید یا حسید یا حسین یا حسین یا سنجدی یا حسین تو نگاه صدای گرفته من نکن خوب جواب یا حسین یا حسین یا سید، یا حسین یا حسین یا حسین سر برسه عمرم یه شب کنار حرم اون زو داره سر برسه سر عمرم یه شب کنار حرم آرزو دارم از برکت, از, برکت از, از برکت روز است آقا اگر که منم آبرو دارم از برکت از بر روز است آقا اگر که منم آبرو دارم خادم یا سید یا حسین یا حسین یا سید یوسفی یه یه یا حسین یا حسین Ya what's Ya where یا حسین آ بو گلم بشق تو سرشته شد زینب آ بو گلم بشق تو سرشته شد زینب به دست حق روی دلم نوشته شد زینب به دست حق دلم نوشته شد زینب نور آن علانوری تو مشعل شوری نور آن تو ماش شوری اگر حسین شاه من تو امپراتوری اگر حسین شاه من چوری از کوچیکی اشک دلم ساقیه بی دسته از کوچیکی اشک دلم ساقیه بی دسته غنچه جا از جام چشاش حسین سرمسته غنچه از جام چشاش حسین سرمسته مست گله یاسم اسیر احساسم مست گله یاسم اسیر احساسم مثل او که عاشق و حازلات ابوساس مزلرویی عاشق بوساس عالم آدم و فلک خم شده تازانو زانو عالم آدم و فلک خم شده تا زانو فرشته و جن و ملک به خدمت بانوی فرشته و جن و ملک به خدمت بانوی بی مقصد و مطلب معنی تو ای و مطلب معنی مرجع تقلید حسین و خانم مرجع تقلید و من حسین ابن علی من حسین ابن علی یا اولیاء چه بملک آل فرینشوالی خون من خون خداو من ودود خون من خون خداو <te> من ودود گر نبودی خون خداو نبود اگر نبودی خون خداو ودی نبود گر فشانم تازه زمزم زاوستیم گر فشانم تازه زمزم زاوستیم سه هزاران عبریل راوسیم من بدیهی مردمو بیا چهام من بدیهی مردمو بیا چهام ای سیام دو عبدالله عبد الله اسی